خب بسم الله الرحمن الرحیم الاحرف المشبهه بلیسه حرفهای شبیه به لیسه لیسه از اخوات کانه بود یعنی اسمش رو مرفوم میکرد و خبرش رو منسوب مانند لیسه زیدون عالمان لیسه زیدون عالمان حالا این یک سری حرفهای هستن شبیه به چی هستن؟ به لیسه كم هي الأحرف المشبهة بالليسة؟ كانت هستند حرفها يشبيه بالليسة هفتاد هفت ماذا يشترط في عمل ما؟ چیزی شرط هست در عمل ما؟ ماذا يشترط في عمل إن؟ ما؟ چیزی شرط هست در عمل إن؟ ماذا يشترط في عمل لا؟ چه چیزی شرط هست در عمل لا؟ ما هو حکم المعطوف على خبر ما ولا؟ حکم آنچه که معطوف شده است بر خبر ما ولا چه هست؟ اشتادیک ماذا یشتارتو فی عمل لا چه چیزی در عمل لا شرط هست؟ این شیش سوالو امروز پاسخ میده. ميجي حفتادوشيش الأحرف المشبهة بليس أربعة حرف هاي شبيه بليس چانتا ميوشان چهارتا وهي إبارتاً أس إن ما لا ولاتا إن شارتا فائدة وقد ألحقت بليس لمشابهتها لها في النفيه <تصفح> <خش> بله میگه ملحق شده اند به لیسه این حروف به خاطر چی؟ به خاطر مشابهت شد به لیسه در نفی بعد این نقطه قشنگی رو در پاورقی گفته گفت الله يعمل هذه الحروف الا الحجازیون و اما غیرون فیهملونها جمیعا میگه فقط حجازیون هستند که اعمال میکنند ان حروف رو ان حروف چکار میکنند؟ یعنی اعمالی لیسر رو بشمیدند اعمالی باقیه اهمالش میکنند خب. هفتاد و هفت يُشترط فی عمل ما ثلاثه شروط خب اولین حرفی که شبیه به آورده اینجا ما است جست می شرط در عمل ما سه شرط الا يتقدم خبرها ولا معموله على اسمها شرط اول اینه که خبر این ما و معمول خبر بر اسم ما مقدم نشود. بر اسم مقدم. دو الله تزداد بعدها این بعد از آن این مقدم یعنی بعد از ما این نیامده باشد. الله تزداد اضافه نشود بعدا بعد از آن این بعد از بعد از ما این اضافه نش سه الا نتضا یا الله نت خبرها به ال نشود ال نت خبرها به خبرش به وسیله الله نقض نشده باشد. مانند ملسلان محمودا محموداً. سلان انسان تنبل پسندیده نیست. کسلان میگییم اسم ما مرفوع علامت مترف محمودا خبرش منصوب علامت نصفت هی خب در این مثال هر سر شرط وجود داره هر سر شرط وجود داره فواید یا و اقتران و خبری ما بلبای زائده جائز است همراه بودن خبر ما با با با یعنی جایز است که روی خبرش با زائده بیاد ماننده وما دارو الفناء لنا بدارن دار فنا دار نابود شدنی برای ما خونه نیست دار نیست خب اینجا ما میبینیم ما, ما شبیه به دارو اسمش الفنا مضاف ایله لنا جار و مجرور بدارن خبر هست لفظن مجرور اما محلن منصوبه در واقع اگر ينبار و بردار ينجري مشي ما دار الفناء لنا دارا ما دار الفناء لنا دارا دو فإنفاط شرط من شروطها باطلة عملها اگر شرط يزون شرطها السيغانة فوت شد عمل ما باطل میشه ما ما محمود الكسلان ما محمود بله در این مثال خبر بر اسم مقدم شده میبینیم که عمل انجام نداده ما محمودون الكسلان میبینیم هر دوتا مرفوح هستن دیگه منصوبی انجام نداده اصلا دیگه عمل انجام نداده بله ما در واقع جمله ما چونینه الكسلانو مبتدای مؤخر محمود خبر مقدم دیگه این اسم خبر ما نیستند اسم خبر ما دو چی؟ مثال بعدی و ما کتابک زید مطالعون در این مثال معمول خبر قبل از اسم اومده معمول چی؟ خبر ببین اگر اینجوری بود مازدون مطالعن ببین این درست بود اگر اینجوری بود مازدون مطالعن کتابکه هم چی بود؟ درست بود ولی اینجا کتابکه که معمول مطالعن هست چون مفعولشه دیگه قبل از اسم ما اومده و عملش چی شده؟ باطل شده گفته بود نه خبر قبل از اسم بیاد نه معمول خبر قبل از اسم بیاد در این مثال معمول خبر قبل از اسم آمده در مثال بعدی ما این این زمان راجعون میگه زمان بر نمی گردد خب اینجا میبینیم که بعد از ما این اومده گفته بود در شرط دوم که بعد از ما این اضافه نشود وگرن عملش باطل میشه و در مثال آخر ما ناجح الا المجتهدو اینجا هم گفته بود که خبر به وسیله الله نقض نشده باشد که اینجا الله اومده اینجا چی اومده؟ بله البته بغیر از الا اومدن اینجا ناجهان هم که خبر قبل از المجتهد اومده یعنی اینجا دو تا مشکل وجود داره هفتاد و هشت هفتاد و پس عمل ما, ما شبیه بلیسه رو با شرط هاش کار کرد بیان کرد حالا این شبیه بلیسه رو داره بیان میکنه در هفتاد و هشت یشترطو في عمل این حفظ ترطیبی شرط هست در عمل این حفظ کردن ترتیب یعنی اول باید اسم بیاد بعد خبر یعنی آقا خبر قبل از اسم نباید بیاد معمولش نباید بیاد بله میگه حفظ ترتیب شرط هست حفظ ترتیب چیه؟ و عدم و انتقاد و خبری ها به الله خبرش هم به وسیله ایلا ناقض مند این احدون خیران من احدون ایلا بالاقل والعلمی این احدون خیران من احدون ایلا بالاقل والعلم خب اینجا میبینیم که خبر به وسیله الا چه شده؟ نقص شده. بله چون اینا متعلقه به خيراً هست فائدة والغالب في استعمالها اقتران خبرها بإله فيا بطول عملها ميقى غالب در اين استعمال اين اين كي خبرش بإله هم راحست و عملش هم چي مشه؟ باطل مشه معنى ما, ما هذا بشران إن هذا إله ملك كريم که اینجا بینیم روی خبرش الله اومده روی خبرش چی و دیگه عمل باطل شده و مرفو شده الله ملکن مرفو شده چی شده؟ دیگه نمیتونه منصوب بکنه چون با الله نقص شده با الله چی شده؟ خوب 79 يشتراط في عمل الله ثلاثة شروط در لاهم هم شرط وجود داره در لاهم چند شرط وجود داره الأول حفظ ترتيب حفظ ترتيب الثاني عدم انتقاض خبرها بهل عدم انتقاض خبر به وسیله ای نقض خبر به وسیله افالف ان یکونه معموله ها شرط ثومه عمل الله این است که هر دوتا معمول چی باشند نکره باشند مانند لا رجلون اینجا هر سر شرط وجود داره مردی حاضر نیست خب رجلون اسمشو حاضرند هم خبرش منسو فواهد این انتقاب و نفی الخبری ینقض عمل جمیل حروف المشبهتی بلیسه اذا کان با اللہ نفسی ها میگه نقض نفی خبر نقض میکنه عمل تمام حروف مشبهه بلیسه زمانی که بوسیله خوده بله. زمان که به وسیله خود الله باشه یعنی اگر خود الله اومده بود و خبر رو نقص کرده بود مال هر یک از این غروف مشبیه بلیسه باشه عملش میشه؟ باطل میشه عمل باطل میشه فه امکانه بما هو بمعناها لا یبطلوه و یکونه هو المعمولو حینه اذن اما اگر این نقص شده باشه با یک کلمه دیگه که به معناه اللهه خود الله نباشه در این صورت دیگه عمل این حروف شبیه باطل نمیشه بالی مانند ما زیدون غیر شاعره ببین ببینیم که عمل باطل نشده و این کلمه که به معنی الله خودش اصلا معمول هست خودش چیه؟ به چه چی شکل؟ میگیم ما, ما شبیه بلیسه زیدون اسمش با زمه غیر خبرش غیره چی؟ شاعرن که هم مضافت پس ما اینجا دیدیم که غیر اومده بود نه تنها اینکه عمل نقص نشده بود بلکه خود غیر چی واقع شده بود خبر باره. یا مثال بعدی این عمرون سوا کاتبین غیر قارین بله. نیست عمر جز کاتب نقره، خب إنجها سوا خبره شواقق شو ده؟ سوا شو شواقق شو ده؟ علامه النصب هم تقديرية البته. كاتبه هم مزافون. لا تحتمل أن تكون لنفي الواحد خصوصا أو لنفي الجنس عموما. وهو حق بها لأن النكره إذا وقعت في سياق النفي نفي ال عمومة ميجل لا من لاي خدمون لاي شبيه بليسة تحتمل أن تكون لنافية الواحد خصوصا احتمال حس كبراي نافية يكجيز باشه. بشكل خاص يا براي نفي جنس باشه بشكل عام وهو احق بها وإن دو وميش حق اینجا چرا؟ لان نکره اذا وقعت في سیاق النف افادت الاموم چون نفی چون نکره زمانی که در سیاق نفی بیاد عامو میرسونه خب موقع گیم لا رجل حاضرن اینجا رجل در سیاق نفی اومده نکره هست لذا عامو میرسونه چی رو میرسونه؟ پس هر دو چیز رو حمل میکنه هر دو چیز درش اینی که و یک یک چیزو یک شخصو نفی بکنه هم درش هست و اینی که عمومو نفی بکنه چی؟ بله متوجه شدی هر دو حالت بله ما میتونیم بگیم یک مرد در خانه حاضر نیست یک مرد حاضر میتونیم بگیم که اصلاً هیچ مردی حاضر نیست هیچ مردی حاضر نیست میگه در این باب هر دو رو هر دو برداشت درش وجود داره و هیچ کدام یکی از این دوتا این که ما بگیم یک چیز رو میکنه یا آم رو میکنه هیچ کدام به شکل تقییه اینجا در این باب وجود نداره ما علت تعین بگیم این معنا رو داره ها این لا, لا رجل حاضرن بر خلاف اون لایی که عمل ان نه رو انجام میده بر خلاف اون لایی که عمل ان نه رو انجام میده پس این لا یعنی لایک شبیه به لس هست هر دو چیز درش احتمال هست 80 اذا اطلفت على خبر ما ولا إذا عطف على خبر ما ولا ببل ولكن وجب رفع المعطوفي نحو ما زيد قائما بل جالس لا رجل مقيما ولكن راحل بعد ينجا يك نقطير بيان ممكن بيكي الزماني كأتف کرد شد برخبر ما ولا يعني تويه بر خبر اینا عطف دادی بر چی اینا؟ برخبرشون به وسیله بل و لاکن به وسیله چی چیزی عطف دادی؟ یعنی حرف عطف یا بل بود یا لاکن بود اینجا واجب است رفع معطوف اونی که معطوف معطوف الی نه، معطوف الی که دیگه خبر خبر منصوبه معطوف میگه در معطوف واجب که مرفوع باشه واجبه که باشه؟ مانند ما قائمن بل جالسون تو میگی نیست زید ایستاده بلکه نشسته است خب اینجا جالسون رو تو عطف بر قائمن که خبر دادی بر چیش عطف دادی؟ بر خبر خب چرا بس پس بعد مرفو باشه؟ میگه به خاطر این که ما اینو اینجا خبر در نظر میگیریم و مبتداشو حصف محذوف میدونیم مبتدا شد چی؟ در واقع شدید ما زیدون قائما بل هو جالسون نیست زید ایسا بلکه او نشسته است یعنی این جالسون که اینجا مرفوعه به خاطری که خبر مبتدای محزوفه خبر چیه؟ مبتدای محزوفه یا لا رجل, رجل مقیمن ولکن راحلون اینجا هم متوجه شدینو؟ باله بس هرگاه ما دادیم بر ما ولای شبیه ملیسا به وسیله بلو لکن این معطوف واجب است که باشه اج اما اذا عطف عليه بغیره ما، فیون سبول معطوف. اما زمانی که عطف داده دا شد بر خبر ولی بغیر از بلولاکن با با های عطف دیگر عطف داده دا شد اینجا دیگه معطوف منسوب میشه مانند ما رجل قنوعا وزاهده ببین اینجا با حرف واب عطف داده دا شد با حرف میبینیم که منسوب است وزاهده و چه؟ بالت هشتاد یک یشترتی فی عمل لاتا ای که اسمها و خبر او من اسمای زمان شرط هست در عمل لاتا در عمل لاتا لاتا یکی دیگر از حروف شبیه به لیسه هست میگه شرط هست در عمل لاتا که اسم و خبر آن از اسمای زمان باشند اسم و قبرش از چی باشن؟ ماننده الحین، الساعة و الهوان ماننده این کلمات و غیرها و اقل ديگه دیگه که دلالت زمان میکنن ولا لابده من حرف اسمها و شرط دیگه شیلی که اسمش همچی باشه حسر شده باشه ماننده لا تحین مناسی و وقت رهائی وجود ندارن خب اینجا ما ببینیم که خبره لاتا اسم زمانه حین هنگام حین اسمش کجا؟ اسمش حسفه در واقع جمله چونیده لاتا الحین و حین مناسی نیست وقت وقت رهایی نیست وقت وقت رهایی رهای بس لاتا میگیم حرف شبیه بلیسه اسمش حذف هست حینه خبرش هست منصور هست مناسی هم مضافون الیه